الحمد لله الواهد الأحد الفرد الثمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لك شريك في الملك ولم يكن لك ولي من الذل وكبره تكبيرا و سلات و سلام علا خیر خلقهی و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب اله الالمین عبل غاسم المصطفى محمد سلالله الله علیه و آله و سلم سیما ناموس الدهر امام العصر خجت ابن الحسن العسکری المهدی ارباق نام تراب مقدمه مقدام و لا نتولا عدای عدایه مجمعین من الان الى قیام یوم خدا رو به آبروی امام زمان علیه السلام قسم میدیم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 جلسات هفتگی روزهای جمعه یه شرح خیلی کوتاهی بر زیارت امین الله که این زیارت از لسان امام زین العابدین علیه السلام در زیارت جدشون امیر المؤمنین علیه السلام متن این زیارت از امام زین العابدین علیه السلام در زیارت امیر المؤمنین علیه السلام علامه مجلسی رضوان الله تعالی علی میفرماید که در معارف شیعه زیارتی از نظر سند و محتوا مثل زیارت امین الله پیدا نمیشه. خاطرین پیشنهاد میدن توصیه میکنن که شیعیان همه امام ها رو در همه زیارتگاه ها با همین متن زیارت کنند خاطرین اگه مشهد, مشهد مشرف بشین صبح و زهر و شب بعد از نمازهای جماعت حضرت علی ابن موسی علیه السلام رو با همین مد این توصیه علامه مجلسی زیارت میکند در اکثر نسخه ها، این زیارت با یک سلام شروع شده اصلا کلن یه دونه سلام بیشتر این زیارت نداره که امام زین العابدین می السلام از سلام علیکه یا امین الله فی عرضه و او علا عباده اما تو بعضی از نسخه ها یه سلام دیگه هم هست. دو دوتا سلام هست که سلام دومینه که از سلام علیکه یا امیر المؤمنین بعد از این دوتا سلام چون ما شرح اینا رو خب قبلا ارز کردیم امام می که در مورد جدشون امیر اشهد و انکه جاحت تفلا حق جهاده که یه جلسه هم راجب این صحبت کردم همین امین کلمه که میفرمایند که من شهادت میدم که تو در راه خدا جهاد کردی به معنای واقعی کلمه جهاد که حالا راجع اینم صحبت بعد میفرمایند و عمل به کتابه حالا این جلسه راجع به این صحبت میکنم که حضرت می من شهادت میدم که تو به قرآن عمل کردی به کتاب خدا عملت به کتابه راجب عمل به قرآن من دو نکته ارز میکنم راجع به حضرت امیر که راجع به حضرت امیر میفرماید که اون حضرت به قرآن عمل کرد دو نکته حالا اگر آیون خسته نشدن حوصله کردن شاید سه نکته بگم بیدن. ولی نظر خودم اینه که دو نکته راجع به این فرمایش عرض کنم نقطه اینه که در بسیاری از موارد حالا من چند موردشو میشمرم اول امیرالمومنین یه عملی رو انجام داده بعد قرآن نازل شده و اون عمل رو تایید کرده و مردمو تشویق کرده که شما هم این عملو بکنید یعنی امیرالمومنین در عمل به قرآن پیش قدم بوده اول اون یک کاری رو انجام داده بعد خدا گفته چه کار خوبی شما هم بکنید این خیلی استثنائیه در مورد از امیر مثلا حضرت امیر در لیله الموید اون شبی که پیغمبر از مکه به مدینه هجرت کرد جای پیغمبر خوابید از تعمیر جای پیغمبر خوابید جان پیغمبر را حفظ کرد پیغمبرم از مکه به مدینه هجرت کرد بعد آیه نازل شد که و منن ناس این اول از تعمیر این کارو کرده بود آیه نازل شد و منن ناس من یشری او ابتقا مرزات الله گفت بعضی از مردم به یه مقامی رسیدند که اینا حاضرن جانشونو بدند رضایت خدا رو جلب کنند شما هم سعی کنید اینجوری باشین این حاضر باشین مالتون رو بدین جانتون رو بدین فقط خدا رو از خودتون راضی کن. رضایت خدا خوب خیلی مهمه خیلی مهم است که خدا از کسی راضی باشه به حاطر این بعدها کسانی پیدا شدن مثل حضرت زینب اینا حاضر بودن اسیر بشند تازیانه بخورند ولی خدا از اینا راضی باشد یا امام حسین حاضر بود اصقرشو بده اکبرشو بده خودش تیکه تیکه بشه ولی خدا از او راضی باشد و منن ناز من نفس او، ابتقام مرضات الله یا اول این یه نمونه اول امیر المومنین قضاشو سه شب داد به یتیم و مسکین و اسیر با آب افتار کرد با آب افتار میکرد رو میداد به یتیم میداد به مسکین سوره حلعتا نازر شد خدا گفت شما هم اینطوری باشین پیسار کنین حالا ما ایرانی یه ضرب درست کردیم برای اینکه پول ندیم ها در حجم این ضرب همش درسته وعی نیست که ما درست کردیم دیگه بعضی اینا شام کنن که آیه قرآنه میگن چراقی که به خونه رواز به مسجد حرامه دیگه پول به ایشکیل نمیدن این دلستش کردن اینی که خدا نگفته که چون اگه بگی مثلا آقا بیا انفاق کن میگه که من مثلا به یکی من گفتم بیا مکه برو گفت من سه تا مکه تو خونه دارم این مکه نمیده مستطی هم هست میگه من سه تا مکه دارم میگم سه تا دختر دارم گم اینا رو اگه جایزیشون رو بدم ثوابش از مکه هم بلاتره چراقی که به خانه رواز به مسجد حرامه بگی انفاق کن میگه ببین من فرشم بردارم عوض کنم کاشان کنم ثوابش از این که به مسجدم کمک کنم بلاتر همین من لوسترم رو عوض کنم، همین خونم رو عوض کنم همین ماشینم رو پراید رو عوض کنم یه دونه الناوت بگیرم در فجر از حجم بلداره، از کربلا هم چراقی که به خانه رواست به مسجد هر آمده، این اینا کی گفته خب؟ اما خدا تو قرآن میگه و یعصرون ناز، علا انفسهم ولو کان به هم این تجربه این خدا قدالو این چی میگه میگه اینا آسایش دیگران رو رفاه دیگران رو به خودشون ترجیح میدن ولو خودشون به شدت نیاز دارن این افتارش رو میده یتیم بخوره خودش شب گرسنه نمیخوابه. یتعمونت تعام علا مسکینن و یتیمن و اسیرها سوره حلعتها دیگه خب اول کی این کار کرد؟ امیرالمومنین قبل از این که این آیه نازل بشه این کار کرده بود یعنی او اول این عمل رو انجام داده بعد قرآن تازد شده سوره حلعتها درست شده خیلی از آیات قرآن اینجوریه امیرالمومنین المومنین یه دانه دیگه بگم تا نشه میگن نمیشه سه بگن. دو تا بگم این دوتا یکی این که او جای پیغمبر خوابید قرآن نازل شد یکی این که اون قضاشو روز به یتیم داد به مسکین داد به اسیر داد یکی هم اینه که اون رو در رکو داد انفاق کرد آیه نازل شد انما ولی و کمولا و رسوله و لذین آمنو اللذین یقیمون از صلاح و یعتون از زکا و هم راکهون گفت این کار کار خیلی عرضشمندیه این مرد انگشترشو در رکو داد تو نمازم فکر پابرهنه ها باشین فکر فقر ها باشین تو نمازم نذارین محرومین دست خالی برند خب میگد او به این کتاب عمل کرد عمل شهادت میده تو به این کتاب عمل کردی با این امیر المومنین اصلا قرآنه من همیشه تو سخنرانی میگم اگه بگن یک کتابی بنویسین بهترین کتاب که ویژگی های یک انسان کامل یک انسان رشدیافتر رو تو اون کتاب نوشته باشن از قرآن بهتر پیدا نمیشه قرآن بهترین کتابیه که ویژگی های انسان کامل رو بیان فرموده اما اگه بگن یه نفر رو نشون بدین نگم بنویسین یه نفر رو نشون بدین که اینا رو داشته باشه اون مرتضا علیه پیدا نمیشه قیل علیه هم پیدا نمیشه داره این کتاب گفته که آقا اینا با آب افتار میکردن به یتیم میدادن خب یه نفر نشون بده این کار کرده باشه شما نشون بده آقای نارهردشی من این سبسا باشه شما آقا یه نفر نشون بده که سه شب با آب افتار کرده باشه قضاشو به یتیم داده باشه علامه مجلسی این کار کرده شیخ مرتضای انزاری کرده سلمان فارسی کرده عبوزر قفاری کرده حبیب ابن مظاهری همچین کاری کرده آقا میگن آقا تو خلق نمیشه صحبت کرد شما یه چیزایی میگی خب یه نفر نشون بده اینا رو کرده باشد ما که نمیتونیم آقا بیایم توی چیز صحبت کنیم تو میگن آقا تو عالم حقیقت تو عالم واقعیت شما یه نفر رو نشون بده که قضاشو به یتیم داده باشه اون مرتضی علیه اگه علی نباشه اصلا میگن آقا این آیه خب مستاقش کیه؟ میگن از اطمیر و یت امونه میگن آقا شما یه نفر رو بده انگشترشو رو تو روکو داده باشه <تصفيق> کی داده؟ توجه بکن چی داده؟ ببین توجه بفرمایید سید بحرال علوم انگشترش رو تو روکو داده آیت الله العظمه برو انگشترشو رو تو روکو داده ببین توجه بفهم بره داده مقداد ابن اسود انگشترشو در روکو آقا کی داده؟ میگن امیر المومنی. اون قرآن ناتقه اون مجسم قرآن مجسمه اون کسیه که آیات قرآن در اون تجسم پیدا کرد اگه میخواییم ببینیم باید مرتضی علی رو بینیم میگن از هم فی سلاته هم خاشه اون اونایی که تو نماز میگن آقا یه نفر نشون به تو نماز خشو داشته باشد حالی مثل چوب خشک میشد وقتی نماز میخوند یه نفر نشون بده آقا این در نماز خشو داشته باشد به یکی گفتن که آقا هر کسی درکت نماز با خشو بخاند بهشت هشت برش واجبه می شما میتونید آقا درکت درکت نماز با خوشو حدیث هم از تا این گرم حدیثه این که واقع دورکت که میتونیم بخونیم حالا خب یه رو نمیشه خون دورکت که دیگه ما نمیمیریم که دورکت با خوشو میخونیم با حضور قلب میخونیم رفت یه قصلی کرد و وزو گرفت و قسل و وزو گفت ده صحب جمعه میرم که مسجد خالی باشه هیچ نه، نموشه حواسم پرت نشه میخوام دوره کت بخونم دیگه آقا نمیخوام که حالا همیشه بخونیم ده صبح در خادم اومد در و باکر گفت آقا من قسل و وضوع کردم پست جمعه کردم میخوام یه دوره کت نماز این در مسجد رو باز نکن بزن من با خدای خودم خرده گوه آقا ده صبح چی مسجد میاد برو خیلی راحت بشه اینا هم اومد اونا اینا دیدنی آقا اونجایی که میخوان حواسشون رو جمع کنن تکبیره رو بگن اصلا آدم از قیافه اینا رو ببینه از هر نماز زده میشه قد چروک میکنن صورتشون رو که از آدم خوشش نمیده این چه نمازی زیاده این هم ات... چه قیافه های آقا با نماز بخون چون نمیتونه بخوند مگی کار هر کسی آگه دور کرد نماز بخوند با خوشو خدا میگه مومنین همه نمازاشون اینجوریه شما پیدا کن دیگه اگه پیدا کرده ب... به ما خبر بده <تصفيق> شما بگوید من یه نفره پیدا کردم نماز با خشوع میخواند به این حواسش رو جمع کرد و گفت الله اکبر بسم الله رو شروع کرد معمارم بود همین یه قرصه شروع کرد چش افتاد به محراب شغل خودش دیگه گفت گفت عجب مهرابی داره این مسجد چه کاشیایی داره گفت اینا به نظرت کاشی کجاست گفت اسفحانه معلومه اینا رازه سا گفت یکه دوه گفت نه درجه یکه سنگ تموم گذاشته گفت الان هم گرون شده الان اینا متری چند هست گفت با این قیمت های امروز اگر متری هفتاد هشتاد زار تومن اینا رو بدند بعد می گفت چند متر حالا برده گفت خیلی مهراب مجلی دیویس متر برده گفت دیویست هشتاد تومن چقدر میشه؟ گفت اینقدر گفت چقدر میگرد اینا رو بچسبونند نسب کنند گفت این کارگر هم گرون شده اینقدر گفت چقدر ملات میخواد خلاصه حساب کردید این مهراب مثلا فرض کنید 8 میلیون تمام شد 15 میلیون تمام شد خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تازه اینی که با قسل و وضوحون دار یعنی قسل روز جمعه و ده صبح با. حالا اونایی که صبح بلند میشه خابالو میخونه خمیازه میکشه اونا را شما بیندید که اونا چیه صبح بلند شده خوابالوه خدا میگه آقا شما میگه نماز با خوشو میگه آقا من علی رو میگم من بیا نماز نگاه کن من فاطمه زهرا رو میگم وقتی آقا نماز میخوند چهار تا ستون بدنش میلرزید صدای به همخوردن استخونای هست زهرا شنیده میشه من اون نماز رو میگم اون میشه قرآن ناطق اون قرآنه قاطعه فریاد میزد در سفرین که با من قرآن ناطقم بزن این گفت اون قرآن ها رو بریزین اون رو چاپ میکنن دیگه نمیفهمن که گفت اون چیزی نیست که کاغذه دیگه چاپ میکنن گفت الان شما کاغذ به من بده مراکبم بده من تو یه روز چهار هزار تا از اونها رو چاپ میکنم به شما میدم. اونو بزن برید مثل من پیدا نمیشه تمام گفت تمام مادرای دنیا دست به دست بدن یه دونه مثل من نمیتونن تعویله بشریات بدن تو شمشیر گذاشته باش سر من میخوای سر منو ببری بعد میگه با اون شوخی نمی کنه بعضی اینجوری احمقند میگن آقا ما با قرآن میگه آقا تو آقا منو میخوای بکشی اونو با شوخی نداری به لب و دندان ابا عبدالله تو چوب میزنی بعد میگه من به قرآن شوخی نمی کنن. آقا تو بفهم اون کاغذ دیگه گوه این میخوای چاپ کنین چاپ کنین میلیون ملیون دارن قرآن چاپ میکنن مشکلی ندارد که اما تمام مادرها آقا با هم پشت, با پشت هم بدن میتونن یه علی به بشریت تحویل بزن این عمل به کتابه این یه نکته نکته اولی این است اول که خیلی جا امیرالمومنین یه عملی رو انجام داده بعد قرآن تازه نازل شده یعنی قرآن طبعیت کرده از رفتار امیر المومن یه نکته دوم ما یه آیه تو قرآن داریم که جز امیرالمومنین المومنین هیچ به این آیه عمل نکرده اصلا ما آیه داریم تو قرآن که جز علی هیچ کس بشه حتی پیغمبرم به این آیه عمل نکرده فرزندانش هم به این آیه عمل نکردن فاطمه زهران به این آیه عمل نکردن انبیان به این آیه عمل نکردن حالا ببینید از فهمیر چه فضائلی دارد امیر المومنین من یه وقت جمع کردم هفتاد تا فضیلت دارد که هیچ کس این فضیلت رو ندارد پیغمبر هم ندارد اولادش هم ندارد حالا من که ذهنتون بازشه علی علی علیه السلام مولود کعبه است علی در کعبه متولد شد خب کی در کعبه متولد شد هیچ کی. کی آقا در کعبه متولد شد امیرالمومنین یه ضربه زده از عبادت جن و انس بالاتر کی همچین ضربه‌ای ضربه زده که از عبادت جن و انس بالاتر باشه امیرالمؤمنین یه پسرایی داره مثل حسن و حسین کی همچین کی خدا پسر بهشت داده سید جوانان بهشت هیچ کی امیرالمؤمنین یه همسری داره مثل فاطمه زهرا کی دارد همچین همسری پیغمبر آقا همچین اصلا کسی بوده که همچین همسری داشته بوده هیچ کس همینطور اینا هفتاد تا همین امیرالم همین لقب امیرالمؤمنین آقا در مورد هیچ کس شما به پیغمبرم بگی امیرالمومنین قصد به جایز نیست به خود پیغمبر به امام زمانم بگی امیرالمومنین جایز نیز. تنها کسی که آقا بهش میشه امیرالمومنین گفت مولای ما علی ابن ابی طالب یه آیه‌ایم تو قرآن داریم که هیچ کس به این آیه عمل نکرده به این آیه میگن آیه نجوا در سوره مبارکه مجادله آیه یه نجوا نجوا در لغت یعنی بیخی گوشی صحبت کردن خصوصی با کردن مثلا یه جوری بیام با شما صحبت کنم که شما بشنوید دیگران نشنوند سلام بذارم تو گوش شما یه چیزی بگم و دیگران نفهم من چی میگم اینو میگن نجوا اولا خدا راجب نجوا میفرماید ان من نجوا من شیطان آیه قرآن این, این هم تو سوری مجادله است می فهمید نجوا بیخ گوشی با کسی صحبت کردن این کار شیطانیه این از شیطان چون کدورت ایجاد میکنه سوء تفاهم ایجاد میکنه ببین من هی میام تو گوش این آقا میگم اون آقا میگه غیبت منه که. مثلا میگم و میخندم اونم میخنده اون میگه داره پشتر ما صحبت میکنه هرکی ممکنه ذهنیتی پیدا کند کار خوبی نیه بلند بگو دیگه یا یه جای دیگه برو. حالا بعضیا نجوا نجوانه میکنند به زبان چی محلی صحبت میکنند مثلا زرگری میگه ما نمیفهمی چی میگه میگه و میخنده اونم میخنده سه نفری دو نفر با هم زرگری صحبت میکنند یا تا ترک با هم ترکی صحبت میکنن. ما زمان متوجه نمیشه این همه شبیه ن یا انگلیسی با هم صحبت میکنند این انگلیسی بلد اونم بلده ما بلد نیستیم با هم انگلیسی میگن بعدمایی میخندن این کار خوبی نی خدا میگه این عمل از شیطانه اینو این کنار این کدورت ایجاد میکنه خب ادمای بزرگم هم همه دوستا رام بیان باشون نجوا کنن دیگه مثلا ادمی مثل پیغمبر اکرم همه دوستا رام بیان بی گوشه صحبت مهم میشن دیگه مردم میگن این ببین دیگه کیه که میره سری با پیغمبر صحبت میکنه سه بار از آن تا حالا اومده. مثلا رهبر معظم انقلاب همه دوستان برن تو گوشی چیزی بگن. حالا ممکنه برن بگن که مثلا بگن ها جا خواه اگه گرمتونه تونه کلر رو روشن کنه. ما نمیدیم چی میگه که. اونم میگه نیازی نیست. نیاز. یه خورده میگذره میاد میگه آقا اگه تشنه آب خنک بیارن میگه ميو... نیازه بسنه بپرش کن پیغمبر اینجوری بود هی میومدن تو گوشش نجوه میگردن حالا بعضی از اینا وقت پیغمبر رو میگرد اصلا ضرورتی نداشت خدا دید که این یه مانه ایز پیغمبر رو رنج میده ازیت میکند گفت هر کی میخواد با پیغمبر نجوا کنه اول صدقه بده آیه قرآن این اینا میگن آیه نجوا گفت یه دینار بدین بریم دیگه هیچکی نیومد پول که بیاد وسط همه میگیشن که دام میگن آقا ولش کن یه سکه بدین بریم ولش کن آقا گفت پول خیلی الان میگن هر کی میخواد صب جمعه بیاد بیت حسن. یه سکه بده بیاد از کسی نمیاد که میگن آقا نوارش گوش میکنه. ولش کن آقا تو خونه نوارش گوش میدون یه <تصفيق> آقایی نوارم گوش نمیداد میگفتش که اینترنت پخش می‌کرد بیت الحسن و یه دیدم به رفیقش میگه میگم آقا ولش کن با هیف اینترنت گفت حزینه میشه ولش کن بابا و اون میگه حزینه میشه اینترنت منم گفت چی میگن چون <تصفيق> <تصفيق> میگه همه اینا رو به دیگ نون بربری بد نمیدن فایده ندارد که ما. حالا اگه بگنقا اکی مسجد میخواد نماز جماعت بیاد مثلا بعد 20 هزار ارتمان در بده کسی نمیاد که توجه بفرمایید پول چه بیاد و سط اصلا دیگه که گفتم آیا رو می خونم یا ای او ال زینه آموم، ناجایی تو رسول ناجیمر اگه خواستین با پیغمبر نجوا کنین. فقط بین یدای نجواكم صدقه قبل از اینکه میخواین نجوا کنین یه دینار بدین ذالک خیرلکم این بهتره وقت پیغمبرم گرفته نمیشه اونایی که ضرورت داره میان امیرالمومنین میفرمایند توجه میفهمم من من ده بار ده بار یه دینار دادم رفتم با پیغمبر خصوصی خلوت کرد ده تا سوال ازش کردم جوابشو گرفتم علم انقدر زشت دارد الان ممکنه باید الان هم با توی باره علم کسی هزینه نمیکنه اشتباه نکن. اگه یه وقت بقی... کسی پول میده ده بچهشو می کلاس زبان مدرکشو می خواد پول در بیاره <تصفيق> چون اونا سرمایه گذاری می دانن اینو میگن که آقا مثلا شما اگه یکی رو دیدی آقا پول میده بچهش بده زبان یاد بگیره او برا علم هزینه نمیکنه میخواد کنکور قبول شه بعد دکتر شه بعد جیبمورو بزنه بچم میکنه میگه در میاد آجا آقا میگه یه مطب بزنه یه ماه همش در میاد میگم آقا این مطبایی که الان میزنن یه روزه در میاد یه روزه همش در میاد آقا کسی بر علم ازینه نمی‌کند. حالا اگه میونین میکنن میگن آقا بعداً جبران میشه. بعدم میاد شما الان ببینید دیگه اینا دیگه بعد سری میاد میگه خداتم نمیکشن. مثلا جوون میاد به من صریحا میگه که من چه رشته ای بخونم پولساز باشه. اصلا براش مهم نیست خدمت به کشور بکنه. نمیگه من چه رشته ای بخونم به مردم میگه چه رشته ای کنم بازار کارش خوب باشه، درآمدش زیاد باشه. میگن برو وکیل شو مثلا مثلا میگم برو دندون پزشک شو یه دندون دروژ کنیم به اندازه یه ماه یه کارگر در میاری حالا بعضی با یه د دن... یه دونه دندون آقا درآمدش از یه کارگر یه ماه بیشتره برو فوتبالیست شو <تصفيق> از یه سال یه کارگر بیشتره یه رو من تو روزنامه میخوندم حساب کردم هر ای که بازی می‌کنه از درآمد یه کارگر در سال بیشتره هر دقیقه مثلا چه رقمی گرفته بودن گرفته بود برای یه سال گفته بود تو کل سال سی و چهار دقیقه بازی کرده همش مستون بوده <تصفح> چون سی و چهار دقیقه اصلا دیده بودن پادشاه هم انقدر در نمی آوردن میگن برو فوتبالیست. حالا مردم چقدر انقدره که مردم فوتبالیست رو اعترام میکنن مجتعد رو اعترام نمیکنن. میگن آقا کارو بارش سکه اروپا بازی میکنه دی برو بیای بی پیدا می کند. ممکنه هزینه هم بکنن ممکن کلاس فوتبال این رو بزنن میذاند دیگه کلاس فوتبالی رفی میگه که تو سماه تابستون انقدر هزینه کردم. میگه فقط بازیش بگیره همه رو جبران میکنند اینا هزینه نمیکنن که فوتبالیات یاد بگیرد اینا سرمایه گذاری میکنن اما عزت امیر تقا من ده بار. یه دینار دادم رفتم یه سال از پیغمبر را اکرم کردم خب بعد پیغ... خدا دید که این خطر شد ممکنه چیزای واجبی پیش بیاد که ضرورت داشته باشیم اون پیغمبر بگن آخه گای آقا ضروری حالا درست نجوا از شیطانه اما گای ضرورت داره که تو جنگی جایی شما پیغمبر رو مطلع کنی که آقا دارن شبیخون میزنن دارن ما رو محاصله میکنن بعد پیغمبر رو مطلع بعض این نجوه ضرورت دارد باید حتما انجام بشه بعد پیغمبر بدونه و دیگران ندونند خطر پیش اومد که ممکنه چیزایی پیش بیاد اینا به خاطر پول نیان بگند این آیه نسخ شد ناسخ و منسوق داریم تو قرآن دیگه قرآن رو یه بحث خیلی مفصلی ها مثلا ما تو قرآن آیات عام داریم آیات خاص داریم آیات محکم داریم آیات متشابه داریم آیات ناسخ داریم آیات منسوخ داریم اینا یه یکی آقا یه آیه رو دیده فتوه داده میگن آقا این آیه نسخ شده مثلا همین آیه رو نسخ شده که هرکی میخواد با پیغمبر نجوا کنه بعد صدقه بده یه مدتی این آیه حاکم بود بعد خدا نسخش کرد اما ابتداعا بعد ناسخ و بدوند منسوخ هم بدوند ابتداعا روزه 24 ساعتی بود اول که اسلام روزه از افتار تا افتار بود شما موقع افتار فقط وقت داشتی به اندازه یه شکم افتار کنی میگن همین که از سفره بلند میشد روزه, م... روزه بعد شروع میشود شما بعد می نیم ساعت مثلا شما در نظر بگیر افتار کنی هیچی بخوری آب بخوری چایی بخوری دوباره شروع میشد. مدت ها ها روزه اینجوری می گرفتند تا جنگ خندق مارم بود مسلمون ها هم روزه میگردن هم میدن می دور مدینه چی میکنن خندق می کندن سلمان پیرمرگ بود سلمان فارسی داشت خندق میکن روزه هم بود دم غروب پیغمبر تعطیل میکرد یه خورده مونده به افتار تعطیل می که بر افتارشونو بکنن سلمان اومد رسید خونه دید مثلا یه سروب مونده تا افتار گفت یه درازی میکشم افتار پا میشه یه وقت پلند شدید وقت نماز اشه است. برای ازان اشه میگه. میگن دیگه نمیتونه افتار بکند دوباره روزه رو شروع کرد ساعت افتار خواب بود دوباره فردا اومد سر زمین از حال رفت افتاد خدا آیه نازش الانه خفف الله انکم خدا حالا تخفیف میده میکی گفت من یه خورده تخفیف میدم ببین توجه بفهمید فهموندن که کلو وشربو حتی یتبین لکم خیط العبیز من الخیت الاسود بخورین بیا شامین تا فجر تا کی اذان صبح شبا میتونین تا اذان صبح بخورین و بیاشامین بعدم فرمودن میتونین به زناتون هم چی بکنین نزدیکی بکنین زناشویی قبلا اونم نمیشد یه ما تعطیل بود زناشویی همین خودش آقا یه فتنه ای الان یه چیز ب... بعد خدا پشت سرش میگه که قبل از اینم من میدونم که بعضی از مومنین خیانت میکردن دوتو میکرد. این است مشکلی آیون حالا دیگه اجازه می‌دیم که هم بخورین، هم بیاشامین، هم زناشویی باشد از تا کی تا اذان صبح. خب اینو میگن ناسخ اون آیه قبلی رو میگن چی؟ منسوخ. دیگه اون رو از بین رفت دیگه. دیگه 24 ساعتی نیست. حالا از اذان صبح تا اذان مغرب اینجا هم این دور خدا آیه نازل شد فَإِنْلَمْ تجدو، قولا اگه نمیتونین صدقه بدین فَإِنَّ اللَّهَ قَفُورٌ رَحِیم الان میگه من بودم بیاین اگه چیز ضروری بود بیاین بگین خب آیه نسخ شد تو این مدتی که این آیه بود تنها کسی که به این آیه عمل کرد مولای موامیر المومنین بود خود پیغمبر که نمیتونست به این آیه عمل کنه پول بده با خودش نجوا کند که نمیشد بخاطر این، خلیفه دوم گفته که من عدیس این جمله رو یادداشت کردم خلیفه دوم گفته کان علی ابن عبی طالب علیه السلام سلاسون علی سه تا فضیلت داشت لو کانت لی واحدتون من کانت احب با من الهمور نعم گوه اگه من یه دونه از اینارو داشتم از تمام سرخ سرخموی پیش من محبوب تر بود این ضربه مثال شد شطور سرخ سرخموی گرون بوده تو عرب خیلی قیمتی بوده این مثل این بیونه که من به شما بگم اگه من یه دونه از این فضیلت رو داشتم از یه برج که تو فرمانیه داشته باشم پیش من برادره این قیمتیه بینه ترونی ها یه پاساج مثلا توی بازار داشته باشم پیش من برادر. این توجه یه کارخونه نمیدنم تولید خودرو داشته باشم برام... یه چیز گرون قیمت رو بگم که یه دونه از این فضیلت ها من از تمام شطران سرخموی محبوب تر بود این ستا چیه؟ یک او فاطمه الله علیها. میگه فاطمه رو عقد او در آوردن ما همه مو خواستگاری کردیم ولی به ما ندادن چون اونو به علی ابن عبید طالب دادن. من اگه این یه رو داشتم از تمام شطران سرخ بوی پیش من بود و اعتاو هرایتو یوم خیبر پرچم فت روز خیبر به دست او دادن و خیبر به دست او فتح شد چون اصلا فتح خیبر یه جوره محال بود می من فروغ عبدیت میخوندم ده متر طول این دیوار خیبر بود ده متر خیلی اون زمان ده متر دیوار ارزش سه متر و نیم بود چه چهار متر ارزش روی این دیوار ارابه های جنگی میوردن و میابردن چهار متر ارزش این دیوار های خیبر بود بعد روی این دیوار ها منجنیق گذاشته بودند چیزهایی که سنگ میدازه اصلا سپا وقتی میخواست نزدیک بشه صدها سنگهای بزرگ روشون پرت میکردن از اون بالا بعد دور تا دور خیبرچی کنده بودن خندق کنده بودن دری هم داشت که چند نفر حل میدادن بازو بسته می دو تا سردار اسلام روز اول و دوم حمله کردن با تلفات سنگین عقب نشینی کردن خب روحیه این مسلمین چی شد؟ تخریب شد گفتن آقا اینجا رو نمیشه گرفت یک فرمانده حکیم تو این اوضاع باید چیکار کنه؟ اول روحی ها رو تجدید کنند الان میگن ریکاوری ببین این روحی ها رو برگردونه چیکار کرد پیغمبر؟ ببین چقدر هنرمند بود گفت فردا من پرچم رو به دست کسی میدم؟ که او خدا و پیغمبر رو دوست دارد خدا و پیغمبر هم او رو دوست دارن کرارن غیر فرار گوه او تا فت نکنه بر نمیگرده اینجوری نیست که او شکست بخورد او اینجا رو فت میکنه که اینا بگن که آقا فردا فت میشه خب با این جملاتی که گفته بود خلیفه دوم میگه من آرزو کردم اون شب دعا میکردم پرچنه اون به من بده جنگلی گفته که خدا و رسول رو دوست دارن، اصلا یه همچین چیزی به این میگفت دیگه پسراشم همه رو جانشین پیغمبر میکرد تا روز قیامت آقا نسلشون اینا میگفتن آقا پیغمبر راجبه این چی گفته هیچی راجبه این رو نگفته که رسول خدا گفت هی نشون میدادم خدا و پیغمبر دیدم روشو از من بر میگرد فهمیدم که من مورد نظرش نیستم من اون روز پرچم را رو داد به لست امیر امیرالمومنین این کلمات رو برای او گفته بود و او خیبر را فتح کرد تزوئج او فاطمه رایت و رایتو یوم خیبر و عمل و عمل به آیه نجوا به آیت نجبا و اینکه او تنها کسی بود که به آیه نجوا عمل کرد همین همین همین همی فضیلت تنها کسی بود که یک آیه قرآنو عمل کرد بقیه هیچ کی نمیتونه ادعا کنه من به این آیه عمل کردم و ما به خلیفه دوم میگیم که اینا ستا نیست هفتاد تاست <تصفح> و او بعضی نخواسته بگه او چرا نگفت که به این واقعا آقای او چرا نگفت که روز قدیر خم او رو دست پیغمبر رفت و پیغمبر گفت هر کی من برو ولایت دارم علی هم برو مگه این کم فضیلتی بوده که او نمیارد او چرا نگفت که علی مولود کعبه است مگه آقا کم فضیلتی بود که علی در کعبه متولد شد خب فاطمه زहरा رو گفت او چرا نگو او پدر حسن این بود مگه کم چیزیه که آقا کسی پدر حسن این باشد. به جز از علی که آورد پسری ابوالعجائب که علم کند به عالم شهدا. او چرا نگفت تو آیه مباهله علی نفس پیغمبر معرفی شده خود پیغمبر معرفی شده است او چرا نگفت علی برادر پیغمبر بود و یکی یکی اصحاب با هم دیگه برادر می‌کرد پیغمبر دیگه همین عمر رو با عبوبک خوب وقت پس جفت هم می‌کرد خیلی دقیق <تصفح> مثلا میدونست کی کرکیه <تصفح> این دوتا رو صدا کرد با هم اصلا شاهکاره رو و وزبیر بیرونی شما این بیرون چقدر هنره یک یکی برین نگاه کنین بیرین چقدر فوقلاده این رو رو سلمان رو با ابوذر، زر امیرون من در سرش بی کلام مند. همه رو برادر کرد از تحمیلی دیگه تو مسجدیش که نمونده با دل شکسته من یا رسول الله یه برادری هم ب... گفتو رو برای خودم نگرداشت چون <تصفيق> <تصفيق> این کم چیزیه که آقا او کره خودش میداند از تعمیر امیر چرا نمیگه که او برادر پیغمبر بود چرا اون نگفت که علی یه ضربه زد در خندق از عبادت جن و انس بالاتر بود هفتاد تا سینات شیطان نیست اگر از این هفتاد تا یکی شو داشت از تمام شطران سرخموی بقوله او بالاتر بود. اما این ستایی که گفته یکیش عمله به آیه نجایی. پس باید بگیم که و عمل تا به کتابه. علی تنها کسی بود که عمله به قرآن کم نیست. چون میکنیم؟ خیال ما میتونیم به قرآن عمل کنیم. ما از اینجا میریم کرولا میدونید به امام حسین چی میگیم؟ میگیم اشهد و نکه قد اقمت... ما شهادت میدیم تو تونستی نماز رو اقامه کنی ما دلاراز میشیم مگه هر کسی میدونه نماز اقامه کند و امر تبل معروف، و ما شهادت میدیم تو هم شما مگه میتونی امر معروف کنی چون امر به علی امام امر به معروف کرده سر این افقرشو داده اکبرشو داده حسنی شو داده مگه ما میتونیم امر معروف کنیم مگه ما میتوانیم به آیات قرآن عمل کنیم نمیدونم اشهدو انکه قد اقمت الصلاه و آتایت از و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر یعنی این ها عمل عمله به قرآن مگذید کنیه بخاطر این می فرمد اشهدو انکه جاهدت فی الله حق جهاده و عملت به کتابه امرو روز جنگ اهده همین به آیات جهاد بخوای عمل کنی میشید همزه سید و شهده بینیشو بریدن برای کینه میکنن الان همین هم هست مگه الان خدا شده الان اگه ما رو پیدا کنن قیم قیمه میکنن با خوجه چه کردن این داعشی ها چه میکردن با ایان این کینه یه که آقا نسبت به که حق دارند با ترین شما تو احود ببین با حمزه سید و شهدا چه کردن این وحشی اومد بینیشو برید گوشاشو برید <تصفيق> این چشماشو از حدقه در آورد با چاقو لبهاشو برید این هند جگرخار آمد یه نخوا برد <تصفيق> یه نخوا برد تمام این اعضای بدن حمزه رو سوراخ می‌کرد این نخو از توش رد میکرد دماغش رو از توش این بینی رو رد کرد ها رو رد کرد لب‌ها رو رد کرد بعد این نخو آویزون کرد به گردنش وارد مکه شد هر کی بهش می‌رسید می‌گفت اینا چیه گفت این گوشه حمزه این نمیدونم بینی حمزه این لب‌های حمزه است این, این انگشتای پاشه انگشت دستشه این ادا کجا جگرش رو از تو امعاء و احشاءش رو بیرون کش جگرش رو گاز گرفت آشورا میگیم وبن آکلت ال اکباد میگیم تو کی هستی تو مگه پسر همون نیستی که کبد همزه سید و رو میخورد این جگر خامو دندان کشید وقتی پیغمبر اومد آقا این بدن مصلح شده رو دید اموش بود اصلا گریه امونش نشد. اون کینهی که اینا نسبت به این بدن داشتن بیتابش میکرد همینجوری مثل بارون گریه میکرد بعد دید همه شهدا گریه کن دارن مادراشون اومدن پدراشون حمزه اومد. خب غریب بود تو مدینه دیگه حمزه اهل مکه بود کسی رو تو مدینه نداشت پیغمبر گله کرد گفت همه شهدا گریه کن دارن والحمزه تلا باواکی الله فهمیدم برای اموی من هیچ کی گریه نمیکنه این مادرای شهید اینو شنیدن این گله پیغمبرو پدرای شهید خواهرای شهید برادر اینا کشته‌ها و شهداای خودشون رو رها کرده اصلا رث شد هر کی می اومد اهود، اول می اومد سر قبر حمزه بعد از اونم تا هر وقت بود این مادر شهید که می اومد اول میره سر قبر حمزه برای حمزه گریه می کرد بعد می اومد سر قبر پسر خودش میشد اصلا مرسوم شد اون روزم ول کردن کشته‌های پار پاره پارهی خودش اومدن رو بدن همزه شد چل پنجات اومدن بلند بلند گریه میکردن خیلی مجلس خوب پیغمبر گریه میکرد مادرای شهدا گریه میکردن مجلس شهید گرم بدم هم هی هم پیغمبر میگفت خدا خیر بده هرکی امرو اومد برای همزه گریه امروز هم اگه شما بتونین بلند بلند بلن برای همزه گریه کنین پیغمبر دعات میکنه امام زمان دعات میکنه هر چی بیاد مدینه منو زیارت کنه پیغمبر میفهم اما نره احود و اموی منو زیارت کنه به من جفا کرده خب من روز قیامت ازا شکبه میکنم میگم تا مدینه آمدی نرفتی احود اموی منو زیارت کنیم خب مجلس خوبی بود عشق میریختن یه وقت اومدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله صفی خاتون داره خواهر خوهر همزه امه پیغمبر پیغمبر اومد جلو صفیه رو گرفت گفت نه امه جان هیچ خواهری نمیتونه بدن برادرشو پاره پاره ببینه گفت تو دق میکنی از پادر بیای. گفت یا رسول الله من از مدینه تا اینجا دویدم میگن یه فرسخ راهه من رو دست دستخالی برن، محرمم نکن پیغمبر اومد عباش و انداخ رو حمزه عبا بندازی پا بیرون میمونه دیگه عبا رو بندازی پا بیرون میمونه دید انگشتان پارم قد کردن گفت خواهر انگشت بریده ام نبیند انقدر خار و خاشاک ریخ روی این پاها پا, پا استز... بعد قسم داد صفیه خاتونو گفت عمجان عبا رو کنار نزن میبوسی بغل میکنی ودا میکنی این عبا رو نزن کنار صفیه قول داد بیاد با عبا رو کنار نزند اما صلی الله که یا ابا عبدالله صلى الله عليك یا ابا عبد الله اما زینب رو آوردن تو گودال قتلگان حالا روپوشی که ننداختن هیچ همین لباس پاره پاره رم به قارت بردن بدن برهنه پاره پاره سر اما این خواهر اومد عبارت مقتل میگن تو گودال کاری کرد دوست و دشمن به حال زینب گریه میکردن حالا دوست گریه میکرد خیلی عجیب نیست یعنی رباب گریه میکرد یعنی سکینه گریه میکرد این خیلی عجیب نیست اما دشمن گریه میکرد یعنی خولی یعنی عمر سرد خیلی عجیب از دشمن به حال زینب راوی گفت نگاه کردم دیدم اسبام دارن به حال زینب دید. حتی خیوله. من یه دونهش میگم دیگه حوصله بیشتر از این ندارم حالا ایشالله حاج آقا میان فید این آخرین جمله من یه دونهش میگم دستش انداخ زیر این بدن پاره پاره بیدید. نگاه کنین هایی دست و انداخ رو کرد به مدینه یه نگاهی به پیغمبر به سمت پیغمبر گفت یا رسول الله حازا حسینو کرد <تصفيق> همین یه دونه بس دیگه هایو حازا حسینو کرد مرملون به مقطع الاعذاب العظام مسلوب العمامت و این کشته فتاده به هامون حسین توست این سید دست و پازده در خون حسین توست سلالله فعلیکه یا